والله دستی که بود راجع به قضایته شوهرت بود که از سودیین عنوان این که این مطلب مشهور است و ما نداره خط مشهوره این در خطور بر حلامه رضوان تعالی شد و از شد که اصحاب برده ها در اصول تعبیر استاد سه برچه بیشتر کامل وجوه در خطور و قبلی بیشت اینا اثبات چون ارزش رو این نظره بشه وجوبی رمزه که اولا برای خودجیت شهرت فتواهی اولا موضوعش رو چیه بودیم شهاز در اصطلاح علمای ما مطلبی فتواهی است که بین علما مشهور باشه اما دلیلی نداشته باشه فعلا در مدیان رواید دلیلی براش نباشه خودجیت هم به همین مطلب که همین مقدار شهرت کافی باشه از وقت اشازا خواهد آمد بعضی ها اینجور مروادت و از بابه حجیت زن مطلقا در فرح حجیت میدونن این هم محل کلام اینجا نیست یعنی اگر ما قائل به انسداد شدیم و حجیت زن خب به شده که از زنون ما هم از شوقت دونن توی بحث نیست اما کسانی که قائلن در اینجا مرادشون انصداد نیست مرادشون زن خاصه یعنی این زن به خصوص حجبه رضایه تقدیه از این زنونهی در اینجا درشه میشه اگرم ثابت نشود و قدیهتش به خاص کسانی که غالبه انصدادن بیشتر از باب زن گفتن اینجا مالباته نمو کردن اینکه زن حاصل از خبر واحد کمتر تا زن که از شغلت باشه. حالا اگر حالا این بحث مالبات اینه که این به خصوص حجب ماشه. و طبعا چون خجیت در اینجا خجیت اوحلایی نیست چون مجرد اینکه که ایک خطوه باشه نمیشه از اوحلایی رو نصفت دار به صاحب بکنیم مثلا قانون مرادشون از خجیت در اینجا حجت هم خودیه یعنی شاغه ما متعدد کرده که به خطوه مشهور و علما عمل بکنیم و لب دلیلی اینجایی که دلیل نیست اگر باشه که بسریت از که در صدار این بحثایی که ما در اجماع کردیم و در شهرت روشن شد که اصولاً چین مدلی در فقه شیعه اینطور نیست که بی اساس باشه یعنی میخواییم تحلیل بکنیم فعلا میتونیم اون رو پیدا بکنیم مناشعش رو پیدا بکنیم یک مقداری از شهرت های که الان در فقه شیعه داریم فتاوانیه هست که شیخ توصی در خلاف یا در محسوس رو نه و در برایات ما نبوده فرقه تفریعیست به از داره. بعد و از شیخ هم یا به اکرام شیخ یا به فاغلت مبنا و هم با اون موافقت کردن علامه وقتی نگاه کردن این فتوا 250 سال مثلا بین شیعه مطرح بوده تبدیل به شو فرده شد درست هم هست؟ خواست هم هست هم داره بس وایی که قصولا در فره شیعه نروده چون بوده این نماره کلام چه نقصه برای دارد اگر خدا نکر تصور رو به که علمای بردی تقرید شیعه کردن که بری درداتی بود. که هیچ حجیعیت ندارد اگر هم بر فرزوی مبانی شیعه قبول کردن و هم به حسن مبانی شهاد فتوا دادن نهایت این است که مثلا در یک باره از زمان شیشتر و خیشتر و خیشتر و علمای شیعه به یک خطبایی خطبا کتاب حکم کتاب و سنت با این بسیار بسیار مشکله این نیاز بینه استدلال ها هم نارف. البته بعضی از موارد شهر، شهرت هم در کتاب قدم ها نسه اتا که خوردگاه صدوه قدر در قدرم موجوده که الان ببایدش نداریم اما آمده اون فرق میکنه یعنی اگر مواد شورت فقه تفریهی باشه که شیخ اون بوده یک حساب داره اگر مواد شورت جایی باشه که فرسوا سابقه داره داریم ما مثلا سابقه داره زمان شیخ صدوق و ایدیه پشتور فوقها بایدن فعلا روایت نداریم این شورت هم اپوکماروژیتش هست از اولین کسانی که در این جلب میشناسیم محول مولا محمد امین استراغازی گفته اگر این طور باشه این موجهده و از ما همه داره رو جلیدی از علمان که اگر فتوای این قدما مشهور باشه این ثابته به خاطر اینکه که به روایات کردن و سابقا توضیح دادیم که انصافا اگر چین فتوایی در کلمات فوقها باشه یعنی قدمای ما اون تقریبا ما دانه علم داریم یعنی قرارت ضروری که روایت بوده و که روایت فتح بودن این رو قرارت بیداریم انما کلام هجیت اون روایت داره هجیت اون روایت به نظر ما ثابت نیست عرض کردیم حدود پسن پسن سال این درسی خشیه مفرح شده ادهی معتقلا هجیت شدم اکثریت داری شالسل سال حقیق و اینا باشه ادهی هم باید هستن که کافی نیست. ما خود اون احوالی که کاش از وجود و روایت هست اما این کافی برای اثبات حقیقیتش نیست خب حالا به قول ایموزی آدم باقل اکتر اوجوی میکنم و سر ایموز متعارف این هم راجع به واقعیت شهرت در کتب و اصحاب ما دیگه نیاز به بحث نداره اون کسان که قاعده به شدن ارز کرده. اوائی که دقیقی ندیم بعدها سه دلیل برشون ذکر کردن که دیوز کنگیم مم... چیزی که میشه دقیق برما قرار داد همون رواسته امروز نهرزل هست خوض و مشته همه به نصحابه و در شاز و نادیر فعن نزمجمع علیه لاره بفیر بشه هم اینه که این خوض و ده و فعن اینا رو ما حمله بر تحبت بکنیم نه به بر اغلاهی این یک الافلام المجمع علیه هم جنس بگیریم مراد از مجمع علیه هم شامل شمعت بگیریم یعنی مشهور نه اجماع و بگیریم این چون تعلیقه ولی اون مورد شبره لیکن این هر همچی مجمعان علیه بود حتی الان دو ساعت باشه فتحه باشه مشهور بود لاره بفیر لاره را هم شرعی بگیریم نه اولایی. لاری رو هم مطلق بگیریم، نه مرسی. تمام این تصرفات باعث بشه، بعد نتیجهش این میشه که امام قرمظه شما به خبر مشهور عمل بکنید، چون هم مکلبی که مطلبی توی معنی بکنید. چون مکلبی که مشهوره من شارع این حجت ده. من تعبد شرعی گرس از وجه ازتون من رو مستاد گفتیم در کلماتی شد. لیکن وجه استزوار در حقیقتی اینه. باید تمام اون کلمات رو هم در تعبود شرقی بکنیم. تعلیل بگیریم. تعلیل رو هم احمد از خبر بگیریم. مثلا ترکل رمان لنه با خامز خب خامز که ترش باشه احمد رومان و اناره. باید تعلیق رو اهم بگیریم و من ازالک باید تعبدی بگیریم و من ازالکم باید لارویفی باید بگیر حقیقی بگیریم نه لارویفی اضافی نه اینکه این رعی مشهور نسبت به اون رعی هی مشهور یعنی باید. <تصفيق> باید قائل یک نوع تعبد به اصطلاح اغلایی در این جهت بشیم که یک براید تعبد شرعی اما اگر تعبد رو اغلایی بگیریم باز مرناش عوض میشه اون در حقیقت اشاره میشه به به اصلا سیره در مثل مجدت ها کارلمان ها شورا که تو در کارلمان ها ویگیری میکنن اکثریت هرچی گفت قبول میکنن این هم احتمال دارم خیلی آفظاهره ظاهره میشه که نازه به ترواد میشه این خلاصه استدلال به حدیث خلاص این نظری رو که ما در سال قدر کنیم خدمت آنه اولم به نظر ما عمر محنظره سقه و این حدیث معتبره من بخیر چون یکیسی یه... قبلشه که یه درم خلیف نه یکیسی اینجا از قبل از اون رو محنظره گفته شده ایشان واقفه ها چی؟ داوود بن چون گفته شده ایشان واقفیه برای توصیح شده لذا عده اون رو موثقه ببینم ما درباره دا حسین هم در محش بحث کردیم که معرفی بودن ایشان ثابت نیست. اصولانی پارده ای رو گذاشتیم که این خیلی ناف در مجموعه معارفی که ما داریم این معرف دینی چون مجموع شفت توصی در این مجموعه کتاب داره تعیف داره خیلی شهر در این و خیلی هم پر کار اممسافنی داتر معرفی است مجموع ش در این مجموعه و که کردیم در این مجموعه اونجاهایی که شیخ اینفراد داره چه در حدیث چه در فرسون شیر چه در وجام چه در فهره چی در تفسیر چه در کلام اون جایی که شیف قبلستان راه نفسه انفراب داره و کسی دیگه نیست یه مقدار توقف می چون ممنوع شیف رو ما توسه در اینجا یه مقدار مثلا این واقعی بودنه داوود این حسین با شیف گفته نجای نگفته به نظر ما بیاد که با نباشه حالا علتش و چراش اون یه او یک شهری داره که الان وقتش اینجا نیست اصولا امتراض های شیخ رو ما تحمل میکنیم و از این موارد شیخ میگه یه واقفی یا نجاشی نمیگه یا چیزی رو نسبت میده یه وقت شیخ کتابی نسبت میده نجاشی میگه. اون جاهایی که شیخ به که در حدیث حدیثی میاده که کلینی و صدو و همزان ایوروکن ما یه و اون احادیث جای تحمل داره قبولش الان خیلی مشکله و زیاد در هست کم نیز احادیس زیادی انفراد های شیخ قدس الله نفسه نصبتا زیاده اون چه که شیخ انفراد داره حالا ما به احترام شیخ نگیم رد میکنیم در حالت توقفی میکنیم خیلی مورد قبول نیست انفراد های شیخ این باجه به حدیث سند حدیث معتبر خود دادون حسین به نظر ما واقفی بودنش ثابت نیست البته اینم هم بحث کردیم اینطور طور فرد بکردیم که منشأ این که شیخشون رو واقفی میدونه حساب کردیم حساب یعنی بررسی کردیم گفتیم اون منشأ قابل اعتماد خیلی نیست حالا جشت بحثش اینجا نیست در بحث خاص خودش اصلا هم حضور با سعادتون پس حدیث به در حال سند این که حدیث در مورد خبره اینه بحث نیست، جای بح خودمش در بین اصحابه و در اشکال نادر این هم مسلمه اون چه که ما الان با این بحث داریم این که آگه این بحث اغلاوی و سیره اغلاوی در حدیث یا در تحبود شرعیه این چون تو بحث تاروز عرض میکنیم شباهه بیر وقراری و برقامه کردیم که حدیث نازره به تحبود اغلاوی و سیره اغلاوی توش تحبود شرعی نیست این یک نکته کلن نیست نکته دیگه اینی که و فعند المجمع یعنی اخیره هم متعرض شد، خب ابدال احتمالات درش بود یکی این که فا برای تعلیل باشه چون در واقع درم هم لام برای تعلیل به کار برده میشه شه هم فا مرموان بجنوردی از قول من هون ناینین هم میکنم که به نظرم چون تا بایی ناینین بیده همون من احتیاط میکنم اونی که قطعا تو ذهنه مرموم ها می که فرمون آینین می کنند فا دلازش و تحلیل اقواه لامه حالا تو ذهن ما به اصول لام پروی کرده اصلا اگه لام تشبه خط فهم نمو موسکر یا لام نمو موسکر این شما ها بوجود هم پکر فرمون آینین می که فا دلازش و تحلیل اقواه هست با لامه یه می توانید این ما به و بذارید منطوره این شده و یا رو نقطهش این شده یه به احتمال دادیم که این یه نوع تقریب باشه تعلیم نباشه این دو تا احتمال دیگه باز دابیه دیگه این که این تعلیم یا تقریب یک عرفی باشه مناده ما از عرف عرف عام مقبول نه عرفی که مثل افراد صفیه و ناردارون ها احتمال داره اوقت این عرفی که تو که این را تسامح بیشتره همون عرفی که آزا این از مقال قصا از مرزان جنسی خیلی عرف عمومی بگیم در همی عرف عام با قصاماناتی که داده مجموعه داره بفید مراد این باشه و یا ممکنه عرف اغلا باشه که این دقیقتر از عرف عامه و ممکن است که تعلیل عقلی باشه اگر تعلیل میخواد عقلی باشه باید ارزایش باشه و عقل نظری و عقل عقلی و ممکنه از تعلیم تحبوت شرعی باشه پس این آن احتمالات خاطر زرب بکنیم این من حاله به احتمالات ندارم پس این تعلیم رو چهار احتمال هم باز در تعلیم یا تقریب داده میشه که عرفی باشه عرفی مقبول نه عرف بچه ها و مجانین و صحبه ها وینا و دو اوحلایی باشه در ها اوحلایی بیشتر مسئله اختلال نظام و ها، در اول که اولای همه احکام با یه مختصری تسامو خیلی مختصری بسید یا حکم عقلی باشه یا حکم تعبودی باشه این چهار تا احکام الفلام المجمع علیه ناظر باشه به جنس و محتمل از عهد ذکری باشه یعنی چیزی که این دو تا. دوتا چهار هشته شدونی مجمعه مراد ممکن است همون مجمعه لقضش باشه یعنی اجماع باشه ممکن است به غرین قبلی شامل شهرت هم بشه این هم دو تا احتمال سی و دو هست باز کل باهی دنه ما ممکن است مراد از مجمعه خصوص خبر مجمعه باشه و مراد از مجمعه هر چیزی که مجمعه باشه هر رعی که شامل فتوه هم بشی این همینون تو چست باز علا کل تقدیر لاره این لاره ممکن است لاره به حقیقی باشه یعنی فی نفسه خود جده ممکن است لاره به اضافی باشه یعنی این مجمعه نسبت به شاید لاره به از کلم بعدی از خیلی میشون قائل به اضافی است ولذا از این رواست مقالده که به مطلب مردجه ها تعدیه کرده سر تعدیه اینه که این لاره اضافی است یا لاره بفی اگر اضافی باشه یعنی خبر مشروع نصد به خبر شازلا درست که اگر پس اگر یه خبر افسح بود یه خبر پسیح بود خبر افسح به قیاس به پسیح یعنی مفی یه خبر افسح سندن بود یه خبر صحیح بود رضا ایشون آماده مهیار رو نوژی قرار دادن هرگاه دو خبر رو ببینیم یکیش دارای مزیدی باشه که نسبت به اون یکی نه فی نفسه افصحییت فی نفسه مرجع نیست لیکن به به اون دیگری پس نکته فنی اینه که شما مخانی تصالب چون نبخانی تقلیل از پس لاردفی حقیقی مراده پوشن شده اصلا امام ناظر روی که خبری که مشهور نه همه نازل روی اینه. کار ندارم با اون شاز نسبت با اون حساب ندیم یا مراد لاره به اضافی است که مقام ترجیح ماشه که ما از سرین شواهد موجود حاکیست که اصلا تو مقام ترجیح نیست این چند تا شد نمیدارم ست تا شد شد باز علا کل این لاره بفیه این در اغلا باشه این در سیره اغلا حجته یا لاره بفیه شرعی باشه اون مطلق باید و مطلقا حقیقی و اضافی چیزی بالای صد خورده احتمال در این عبارت داده میشه به ان مجموع علی لاره بیگه هم یکی نماز کرده و اون نکاتی روی که آیا استظهار کردن مرمیست و این احتمالات و ما عرض کردیم خلاصه احتمالات یک ظاهر تعبیر تعلیل است نه تقریر دو تعلیل یک امر اوغلایی است نه تقریر و نه تعبدی و نه عرفی اسلام هم ظاهرا اهد ذکری. است که الان آمده. مجمله هم ظاهرا در اینجا شامل مشهور میشه و ظاهرش اینه که ناظر به خبر مطلق نیست که شامل فتوا بشه لاری هم لاری بفی حقیقی، نه اضافی و لاری بفی هم اغلاییست نه عقلی و نه تعبدی لاری بفی هم در اغلا یعنی پیش اغلا اگر خبری رو در نظر نعودن قبول میکنن لاری بفی هم اتناهی از با این مقدماتی که من اعط کردم، اگه استضاد شد دیگه کاملا روشن میشه که حدیث مبارک شامل فتوای مشکول نمیشه اختصاص پیدا میکنه و اصلا شامل باب ترجیح هم نمیشه ناظر به قجیت فی نفسه است، قجیت حقیقی لاره بفی حقیقی اصلا ناظر به مقام ترجیح و تا نیست و لذا از کردیم اصولن امام در این سوال و جوابایی که با امرو نهنزل شده ناظر به یک تریقه اغلایی در شناست روایات امه البته اصل سوال در تعارض بوده این درسته لكن امام نمیخوان از زاویه یه یعنی فرق خود جیت صحبت بکنه. من همینی هم شواهد من از کردم میدنید وقتی که از شما راجع به کلام خودتون سوال میکنن شما معنی نداره که از باب خود وارد بشیم مثلا میگنم شما در این کتابی که شاک کردی در اون سفت اینجور یه روزی هم در درست اینجور گفتی اینا با هم نمیخواه آیا معهول شما ارجاب به حجیز خبر با حد بدین یعنی بگیم اینم حجت اونم حجت ولی بیا ترجیح بین همه بده آن توجه هم نگه هست اصلا و حدیث جب ترجیح نیست جب ترجیح در است که هر دو سلام حجت باشه وقتی میگه شما یکی رو بری. در قطع نقصه پندیر رو در جگ به هری سوال از خود امام ده. اگر از خود شما سوال کردن اما در فلان کتاب فلان صفحه اینجور نوشیدید یه درک هم از شما یا مولوی زخم شده اینجوری گفتید شما میاد به طرف مقابل بگین هر دو حجت بیا ترجیح بده من, من داره که خود انسان میگه ترجیح بده خب طبیعتاً خواهد که با ما این کتابی که نوشتیم تاریخش بوده این سخنانی تاریخش کلام بوده نظرم برگشت بعد یا میگه بلی برشنش دوار کندار این کتاب میگه بعد به حواست هم نبوده خود انسان خب دقت بکنی یعنی اینا توجه نکردن در این حدیثش این نقطه فنی که دقتشون تالیه چیز نگفته منطابه نمیگفتیم نقطه فنی در حدیث در حقیقت اینه این نمیاد تا آرز روایات رسول الله با بکنه نمیاد تا آرز کلام دیگر تا خود امامه و لذا امام صلی الله علیه معنا نداره که از داویه ترجیح وارد باشه اصلا این معنا نداره خود دقت نقطه فرمیه دقت کرده وقتی که سؤال از کلام خدا آدمه معنا نداره آدم بگه اونم حجه اونم حجه بیا شما که ترجیح دیگری بگه دارن از خود شخص سؤال میکنن ما الان اگر ما این سؤاله بکنیم چی جواب میدیم ترجیح میدیم از جا به ترکم معلومه و رضا گفتم من ارز کردم تا الان نمی این در دوره سازه اصلا جرد روایت جرد ترجیح نیست کنند این هم که آقای خوبی به ارتکاز و اصولیشون فرمان تمیز الهجن با خود جه بیشون هم قبولید خوندیم امباره پیشون تمیز الهجن منویش یک مقداری به اون ارتکاز و اصولیشون نزدیک شدن سر قسط رو ما دادیم صرفش که مقام مقام ترجیح نیست چون مقام مقام سوال از فرماتش کلام خودش شخصه آ دو جور هست شما ما نفر کرده چون هم حجت اون حجت اینه که با ترجیح بده من که میدونم چی گفتن ولذا ایمان هم لذا توضیح دیم. این توضیح گذشت اول امام میفرمه خب گاهی اوقات میشون واسه هر حیل نفر نفر یه نفر اون اشتباه کرده بگه نا امام اینجا از این یکی که شکمی داره موافق کتاب و احتمال میدم من چون یقین ندارم ذکر نشده شاید امام مخواستن بگن که ببین این روایتی که شدیدید بعضی هاش همون کلیات و قرآن و سنت بعضی نه تفریعات اهل بیت. اگه مثلا تفریعات اهل بیت باشه حساب دیگر یاده شاید احتمال از این که امام عمر بن حنزاله بیگه ه مشکل از حذفی بوده. امام می‌کنه خیلی خوگی این توش کن. ایش تقییه ساده شده. من من تقییه ساده شد. حتما یک شریع صادر شد. من گفتم او مخابرهای صادر شد. میگه آه هر دوش با یک سونیا با یکیش موفق نیستی با یکی دیگری واتریابه لیش از گری. یک داره سوال بکنه. اما اینجا که می‌ندازه از کدام طنین؟ ادامه ارجی ها تا تلگاری ما ما. گفتن ارجی هنی اکثیر نه اکثر نیست. امام مخالف چین چیزی نیست سوره واسه من اگر موردی برخورد کردی که پنج نفرشی از این و نه نفر پنج از اون و هر دوم تا با کتاب هر دو نشه با سنی موافق نصفش باشه نمیخواد این رو موردی به من مراجعه کن تا حل موردی بکنم این حل کلی رو تونم بکنم ندارن من عادتاً چین چیزی نیست ببینید اذن فرجه تنها اختیار بکنی مراد ایده من همچه مورد نیست در ببایدت من این حالای مشکل دیگه پیدا شده من همچی چیزی رو ندارم همچی چیزی رو نگفتم خود امام قایل کلامه اون میفهمه چیه جایی بر ولی ازا اگر ده قطعه پشه نطوره به موزه اضافه کردم تاره نگفته بود. اگر انسان خوب تحمل بکنه اصلا این روایت کلا محیطش محیط ترجیح نیست. بعد دیروزم یکی از آن سوال کرد که چرا علمای ما تا قرن نهم و دهم این روایت در باب ترجیح نیاوردن؟ خاص که به احتماله اصلا علمای ما هم همینا فهمیدهن. اصلا این روایتو در باب مرجی‌ها ذکر نکردن، حتی شیخ توصی چون شیخ توصی میگه حتی من بخاطر این، چون سیر مورد در از ذریعه بحث تعارض نداره چون میگه خبر واحد حجت در بحث تعارض معنا نداره. شیخ طوسی بحث تعارض داره. اصلا این روایت رو ترجیح به این ترجیب اصلا کلا نه بوده احتمال قبی بنده میدن نظر اولمایی این بوده که اصلا روایت تو مقام ترجیح نیست من توضیحاتش رو چرا رانم عرض کردم با مراجعه به وضع علماء ما چه در بغداد چه در اون اونجایی که ما میدونیم کسی از علماء ما قائل به حجیت تعبدی خبر نیست همه به دنبال شباهه به لکن درقوم شواهد یک سنخه در وقتات سنخه دیگریه خوب دقت فرمودید و تعارض هر حجی تعبدیه خبره ترجیح بر ای تعارضه اصلا نبوده این مبنای ترجیح اصلا مبنای ترجیح بین علمای ما از زمان از ترجیح بعد و صدوق داره ترجیح بعده ترجیح به معللن در بعض موارد صدوق آمده همه جا نه اگر دو صاحب حدیث معارض باشه یکی توش علت باشه مثل یکی گفته کل رو یکی گفته لا تا کل رو ما نه ها صدوق میگه اونی که حدیث محله مقدمه اینم داره صدوقی این هم داره اما مثلا تو اعلان شرایط چون یه مورد صدوق فقیه هم باشه این دوزا ترجیح در روازه صدوق آمده. بقیه نه اما شیخ گوی روات داریم که این موصل از یاد ضعیفه اینطور در اما این ترجیح که حجه حجت باشه نه آمده. و عرض کردیم مبانی اصحاب ما اینطور بوده یکی در تعارض این چون خیلی مهمه من خیلی تکرارش می‌کنم یکی مسئله طرح بوده مثلا مثل نادر احمد که در حدیث متعارض یک کاتگوری هم تایفا رو تعریف می‌کرد و به هر دو تایید یه مسئله تخییر بوده که منسوب به ظاهر کلینی صادر احتمال این شد تو بحث تعارض توی معاصری نو مطرحی هم سالکفای ظاهره قاعده تخییره یک مبنا مبنای جمع بوده این مبانی از خواب تون باشه که شیخ توسی قادره پس یکی تر بوده یکی تخلیر بوده در حدیث نمتعابضه یکی هم جمع بوده این مبانی مشهور و قدم هست. از بعد از علامه که بحث و جیه خبر مسته شد مسلک ترجیح جواسه هایت وارد شد وقتی مسلک ترجیح هم وارد شد رواده ما رهندله آورده آری ششاژو بعد از قرن هشتم و ترجیح رو اخذ کردم علمای اهل سنت دارن چون قایه برجه تعبودی خبره و از کردن حججی ترجیحاتی ام که اهل سنت دارن تماماً علل قواعده این یعنی در کتب اهل سنت یک دانه مرجح منصوص نداره دقت بکنه اصلا در روایات معتور اهل سندن یک حدیث واحد که به رسول الله گفته تو درشیا رسول الله حدیث شما متعارضه چکار بکنیم یک دانه حدیث در تاروز ندارن یک دانه حدیث که اصلا هم چه دارن یک نقطه بسیار مهمیه نشون میده تاروز در حدیث رسول الله تماما درد میشنه این خیلی مهمه زاویه بحث رو خیلی مهم میکده یعنی تعارض در حدیث رسول الله نیست، اثباتیه. تماماً بعد از نشانه. بله ما از امیرالمؤمنین در کتاب سوره غیث روایت داریم که چرا احادیث رسول الله متعارضه. منو از همون اهدس صحابه تعارض شروع شد. تو خود اهد حضرت رسول الله نیست، تو اهل صحابه شروع شد. اما در میراث های ما حدیث معتبر از امام صادق در تعارض داریم. میفهم فرق ما با اهل سنت. که نشون میده تا آراض در روایت ما ساده در همون زمان بوده نه اینکه که ده نقطه فندی رو پس پناکه وقت اهل سنت نه تا آراض و رسول رسولات دارن نه ترجیه رو تمام رو رو قبائد رو باکم کردن آیده هم پیش اونها همین نقطه که اهل داده حدیثه نصد و آخر لاره بخی هستم هشتاد و خوردهی در کلمات اهل سنت هست مثل اله احکام و آمده نگاه با که میشونه امرده تصمیش که اله 83 تا 35 ساله دارده بالای 83 تا مارجه هیشون مرده تمام این مارجه ها حساب رو قاعده هست این اصول آمه که آمد شما ترسده علامه از حال ها بزنه خب برگردیم به روایات مارجه پیدا کنیم لذا یوانشه هاش در بین اصحاب ما این جا بفتاد که ما مارجه ها داریم و بعدم آمدن گفتن مرجحات منصوصه داریم و غیر منصوصه داریم. اصلا در همین حدیثون چهار تا مرجحه است. اول شهرت، بعد موافقت کتاب، سه تا هست بعدم مخالفت موافقت عامه. بعدم قصه اذن فریضه تصل قائم علما. این اومدن بعضی گفتن مرجحات چیکار بکنیم؟ نسبت بین مرجحات چیکار بکنیم؟ بحثی مفصل ازها ما انجام داد. تمام این بحثا بعد از قرن دوچی مردم ترجیح می‌مردن ترجیح اما ترجیحشون دقیق روایت نیست به عمر بن مثلا ترجیح می‌یاره که این رو نگاه میکن اگر رواتش از اهل سنت یا مذاهب فاصله قبول نمی‌کنه از شیعه اینجوری ترجیح خود شیخ ارز کردم زاهر. خب اولین که در چیه حجیت تعبودی مطرح کرده ایشانه اما عملا تو تحضیب و استفسار و فقه ایشان نمی بینیم این عملا یا مثلا ایشون به اجمالا مطلح کرده نه در حدیت غلط برحال به خلاف پس صاحب مداره در صاحب مداره خیلی صاف می بینیم مثل هر خبر سه قبول میکنه ولی مخشوع رو ایراز کرده این صافی استدلال و منهج علمی رو در کلمات شیخ توسی نمی‌بینیم و از درش هم نمیدونیم باید خود شهر عالم ما ما کلی نسبت یادن به شهر نمیتون بگیم روشن شد انشاءالات حالا پس تا اینجا روشن شد که این روایت مبارکه اصولا در قرنهای متأخر در بحث ترجیح وارد شد اصلا بحث ترجیح شون فرعه و جرت است ابتداعا در اهل سنت وارد شد بعدها در شیعه این نمیکرد که از کردن که تفاوت ما با اهل سنت هم روشن بشه بعد از حجیت شغلت فتوایی یعنی این نواه بس خیلی صحبت نکنیم مرغوم شیخ و بعد منتبه شیخ مرغوم استاد پنجم از زنون معتبر رو حجیت خبر واحدی حجیت خبر واحد اصل حالا گفتیم مونناقری تنج میشه وجز خبر درستش هم همینه خبر اضافه شده به واحد بعضی‌ها میگن الخبر الواحد نیستن چرا ذاتش همون خبر الواحده صحیحش همون به نحوه اضافه و الواحد صفت خبر نیست الواحد صفت راویه یعنی خبر را راو الواحد نه خبر الواحد که خود خبر واحد باشه نه مراد خبری است که یک راویه واحد نقل کرده بعد مرهوم استاد متعرضه اول مقدمه شدن چون این مقدمه در کلمات شیخ انصاری در متأخرین ما آمده یک ادبهی بعد از مرهوم شیخ انصاری دنبال بحثیشون افتادن و حاصلش اینه که با اون تعریف مشغولی که گفتن ما چطور بحث خبر واحد رو که مسلمن جز و اصوله داخل بکنیم چون ما یعنی خصفی این عوالت ازادیه موضوع کل علمه و چون موضوع موصول عدله عربه هست خبر جزه حوارز ذاتی عدله عربه نیست این لذا ایشان مرموم آی خوی مقدمه فرمونه که این بحث خیلی مهمه مواحث بسیار مهمه چون مواردی که ما در شریعت مقدسه بخواییم به قطع و یقین و ضروریات و اینها اثبات میکنیم کمه و تمام شریعت نیاز ما به بحث خبر واحده خب بسیار بعدش هم که اگر خبر واحدم هم جد بود انصداد نمیشه اگر نبودم هم میشه بعدش هم فرمودن و واضحه که این بحث خیلی از اهم مسائل اصولی هست. بله بعد اشاره به همین اشکال میکنن که موضوع کلعه بعدا میفهمه حالا بناعاً عدل التزام به لزوم الموضوع کلعه بنابرای این که التزام بدیم که هر علمی موضوع میخواد به الله تماه و سحیل فلا موضوع اله علم اصول اصلا علم اصول موضوع نداره و علمیت اله علا تتوقف علا وجود الموضوع علا ما تقدم الکلام و فیفی عوال بحث بذاشت یه چند بارم ذکر کرده کلمات اصحاب ما هم انصافا خیلی متعارضی خیلی مبهم غیروازه و از در که موضوع مورد همون مثلا انسان یه رساله هم یه بحث هم نیست حول موضوع معینه این نیست مورد از حالا بعضی از بزرگان نمیشتن اشتباه که فماکان و ما یه توضیحاتی از کردیم که چون صاحب کفایم در اینجا میدونید که ایشون قایله که تمایز علوم به اهداف و اقراضه نه به موضوعات چون مشهور این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات موضوعات هم به ویسی ها و این توضیحات رو گذشت و حالا در خلال بحثا هم یک اشاره خیلی شدیم چون بحثای تقریبا یعنی مصالحاً فعلاً لاعقل نیست اشکال در مثل فقط علم و اصول نیست در نحو هم هست چون مثلا در نحو بحث میشه از رفع حالاتی هست که برای کلمه رفع نصب اینها میگن این رفعانه از جزء عوارض ذاتی کلمه نیست سو جزء عوارض ذاتی نیست بلکه صحیحش اینه جزء عوارض غریبهن نیست و هر معنایی که بخویم بگیم امور اعتباری است عرب تلفظ کرده اصلا نه جزء عوارض غریبه است پس اینا شیخ ما درست بکنیم اینه که ادعی ای آمدن گفتن یا مثلا علم موضوع نمیخواد یا ادعی آمدن گفتن این علوم و از راه محمولات درست به از راه به از ادراز اندازی کرد و توضیح لام من مگو استاد اینجا فرنده لا موضوع لكن اصل این مطلب که علوم حریری موضوع میخواد این درسته اینه که ایشون میگن اصلا موضوع نمیخواد اینم ثابت نیست میگن اینو همجوری که طولانی میشه و هم سابقا شده علوم حقیقی مثل تر، فیزیک، شیمی، نجوم ریاضیات اینا موضوع میخواه علوم اعتباری موضوع نمیخواه و موضوع هم ندارن نه این که اصلا موضوع براشون تصور نمیشه و اصولا علوم اعتباری تأسیسشون بر حسر اقراضیس که هست و اهدافی که هست نه بر حسر موضوع ها اما علوم حقیقی چرا موضوع میخواه و تمایزشان به تمایز موضوعاته اما علوم اعتباری و کما اینکه علوم اعتباری رو این جهت دارای قابلیت کشش هم هست لذا احتیاجی نداریم که اگر ما مطالب جدی آوریم علم جدی بگیریم برسونیم این هم احتیاج نیست طبیعت علوم اعتباری کشش داره فرض مثلا ما به بررسی خودمون علم رجال که تأسیس شد اول با اینکه سرغز یا نه بعد زمان هم گفتن بحث دیگه در رجال چه می‌دونم مشترک پیدا میشه اسمش حریذ یا جریر یا حریذ یا جریر چند جور نوشته بعد بعدش باز اشتباه شد نسبش که یکی کوفیه یکی بصری یکی از اونها بعد یواشواش مسئله تفاوت مطرح شد آیا رو در کرده نکرده نکره کرده نکرد یعنی همه تدریجا تمییز و مشترکات مطرح شد تدریجا در رجال بر اثر گذشته زمان هی مواحث جدیدی اضافه شد نیازها رو نگاه میکردن طبق این نیازها جرم میکردن او چیرام همینجوره؟ اصول آمدن یک از علوم رو مثلا مواحث مطرح کردن حتی از کردم که رو در اصول متوسط ما یعنی مورد از متوسط مثل علامه که ایشم از سنیا درسته تا یه مدتی مواحث مفردات الفاظ هم در اونجا مطرح بود معمه واب و فاب و صمه و علاو و الا چون در موارد استفاده شده آیا منو و اینها در کتبه اصول و فلسفه کتابخانه موجود در خصوصا هم که اله ماشاءالله در اون بعضی اینو برداشتن این یکی الهاسو کلا برداشتن الان شما تو اصول نمیگید کس این طبیعت علم و اصوله این بحثی هم که الان ما فهم چیزی به نام و اصول که چیزی بنای کلی و کلیتر باشه از خود خود و اصول و عنای کلیات فقه بود بازی یک کلیاتی که این مباحث اصول جمع بکنه و زیر بناهای کلی و زیرگاهای های کلی اسوش فلسفه اصول فقه بذاشته و بناه مثلا علم تازهی باشه طبق تصور ما اونم نیازی بشینیست اون تو خود اصول چون طبیعت و اصول جزو علوم اعتباریست و این آثار از قبیل حجیت و غیره نه جزو عوارز ذاتی هم به سا قریبه هستن اصولاً از اساس که تشکیل شده این قابلیت توسعه داشته بعضی ها خیال این قابلیت توصحه که در مثل رجال یا اصول هست تو فیزیک هم هست تو شیمی هم هست نظام منکر کلیه علوم شدن که موضوع داشته باشن نه اون نیست این واقعیت ندار ای حالا این بحث امروزی به اصطلاح پلسطفه شناختی و فلسفه علمی این فلسفه این الان نمیخوام بشم ما اجمالا صحبت اینه سابقا کردین مرحوم آغازیان نظر مبارشون به همین حق همینه همین الان سوال من ازشون خودم خوشو اخاره خاله, خاله مو بود هم شیدم صاحبشون نوشتم این نظری آغازیا رو دادم به ایشون که فرق بین علوم حقیقی و علوم اعتباری علوم حقیقی موضوع میخوان علوم اعتباری موضوع نمیخوان حقم با ایشانه. توی مقالات آغازیام اومده آی موزهشم که اتصالشان رو نشون که این موضوع رو طرفو حالا استادنا المحقق ایشون آی بو اجازه اردنایی تعبیر می کنه شیخ ادن استاد میگن از مفهوم زیاد تعبیر به استادنا المحقق میکردن فرمودن که فس احسن هو اثبته او فی المغاباته مقاله هم چاک شده من موازیام نظر مبارک همین همین مطلب مطلب درستی تحلیلش اینجا جا بعد وارد کلام شیخ انصاری و مناقشاتی که با ایشون شده به نظر من بخونه دیگه احتیاج نداره چون شیخ انصاری میگه اینجا جزه عوارزشه که آیا سنت تصفت با خبر واحد یا نه یه دیگران اشار کردن که پایه داره دیگران دارن که این سبوت سبوت تبدیل سبوت و آبا که گفته شده خیلی دیالا به نظر من خود مراجعه کنه عرضش بحث اینچون نداره و در خلال بحث که ما انجام میدیم اما در طبقه ما خیلی واضحه که جز اصول بلکه اساس اصوله، چون رو احراز و اهدافی که داره مراد ما از اهداف اینا هم آمدن دیدن که از کنم من تاریخ رو همیشه که نگاه مشکلات رو حل میشه از اوائل تقریبا نیمه های قرنه اول خیق در اسلام شروع شد حتی حدیث هم شروع نگه رو از فقه در دنیای اسلام شروع شد فعال های مدینه اده شما لهمی زمانه رفت تا حدود سالهای و قرن دوم تماما دیگه فقه های بزرگ اسلام قرن دوم هست ابو عنیق و شافی و مالک و امام صادق بعد اون فقه های غیر معروف سفیان صوری و حسن صالح و نمیدونم عبدالعبن مبارک و ابن راهوی و الا آخرهی خود زید ابن علی و بزرگان دان های دنیای اسلام تو این زمانه وقتی از سالهای 1550 نمایه در موضوع مقدمات رجال شروع شد اواخر قرن دو حدود سالهای 1778 اصول شروع شد این دو تا درس هر دو تکامل پیدا کردن تدریجا اصول به این هدف شروع شد برای اینکه این فقیه که سه سال ازش بوده بود، برای اینکه فقیه بتونه خوب استنباد بکنه، یک سری قوانای، یک سری مثلا مسائلی مطرح بشه که بتواند در جمعی ابواب فقه کارساز باشه. نه خصوص یک مسئله، یک قوانا عمومی، یک عمومی. خب قطعا هدیه شده که از اون مباحثه کلیش به تمام فقه کارسازی که یه بخش نداره. این دیگه یه بخش نداره. خبر زبابتی که مطرح مثل... شد. و نظام آس کردیم یه قسمت زیادی بعد از سالهای سال سال هست کتابی که الان داری کتاب علوم شاطیس. حالا نه اولین کتابی که الان به اسم آن یه بحثه زیادی شاید به خبره. دلیل بهتر از اینکه دلیل بهتر از موضوع خارجی از اوائل کتولی که ما در اصول داری بحث وجود خبره. مخصوصاً به نظرم اون گفتن 50 تا 60 صفحه فقط از یه وجود خبر محجر محجر. خیلی فشار آورده چون شافی این یعنی اولین چیزیه که خبر موصل ره کرد قبل از اون عمل میکرد اینطور گفتش رو در صدقش شما نمیبینم سنی ها اینطور ادعا میکنن علاوه اینکه میگم بحث گذشته دیگه مثلا واضح بشن خدا اون بحث نگاه بکنن چون خیلی از تعارضات خیلی به مناقشات جدلی منم از مناقشات جدلی خیلی خوشم نمیم فقط ما کاری که میکنیم قبل از اینکه واسه بحث و جدل خبرو از شواهد و ادله و اینجا اولش متعرض من داره کلام اخباری ها میشین اونها اصلا این بحث رو نکنید کتب عربه و غیر عربه کتب مشهور ما حجت جهت بحث به این جهت نکنی. زاویه بحث رو بردن به جهت دیگری و برای این جهت خاتمه وسائلم امروز روز نشد بخونیم این مداد کلام اخبارا فعلا مثلا از برنامه ایشون خود آمیلی راجی به حجیت کتب عربی، ادراکیه کتب عربی و غیره منار کتب مشهوره که اصلا نیاز شما بحث حجره خبر واحد نداریم چرا بحث میکنید تمام این خبرها مغلون به شواهدن و باید قبولش بکنید این ان اول فردا میگی چون محمود استاد در اشارات میاره اما کلی بحثش نفرموندن تا آخر اینو میگیم بعد وارد ادله حجیت در طرفین ان All right. <laughs>